عمری است تا به راه قمت رو نهادیم روی و ریای خلق به یک سو نهادیم تا قرواق مدرسه بقال و قیل عل در راه جام و ساقیه مهرون نهادیم هم جان بدان دو نرگس جادوس پردهیم هم دل بدان دو سنبل هندو نهادیم عمری گذشت تا به امید اشارتی چشمی بدان دو و گوشه ابرو نقادی ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده ایم. تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز بنیاد بر کرشمه جادون آید بی زلف سرکشش سر صودایی از ملال همچون ب بر سر زانون آدین در گوشه امید چون نظارگان ما چشم طلب بر آن خم ابرون عادین گفتی که حافظا دل سرگشتت کجاست؟ در حلقه آن خم گیسون عاد